این, این که دست‌ساری لیتنسون کتاب الغلاو و حتی کتب انحرافی دسته جورانسن کتابی که در جینسو سکسو یوجیضاست تو خودش نگهر بذاره فسون کی اباوشن یاد زریه آیا این دلیل بر هست یا این دلیل بر حرمت این بحثی که اباوشن تمام دستی که آن مرحله در حقیقت اینه و اما ترویج پتب زلال نشور پتب زلال نسلت دادن تألیف ایجادش فبیران الله همه ماید ثبون انداردین اکتبون کتاب برگیه این رو نسلت به خدا دادن این درست برسر حفظ و سابقاً هم ارز شد بعد هم باز انشاءالله ارز می کنم ارز که از زمان محتر و بغداد موشیخ مفید تابعه دیوان شیخ طوسی. نکته طرحش اینه که شیخ توصی در کتاب نهایش شبیه فتاوی شیخ مفید رو آورده و در کتاب مبسوط شبیه فتاوی اهل سنت آورده. در کتاب نهایش شیخ توصی زاویه فکری بدرزی شده. همین هر کتاب در صاحبخانه خود داخلی هست. در کتاب مبسوط از زاویه اجتماعی و حکومتی و بلایی برخورد شده و از شد که در کتاب مقنی از همون بحث حکومتیش هم هست البته خب با اون تفسیر عوال شهر نیست اما هست موجوده ما اون بحثم در غنائم بوده که اگر در غنائم کتاب زلال باشه اون کتابو رو معدوم بکنه یا معدوم نکنه اونجا داره این رو به اصطلاح ما گفتیم به جور بحث ها بحث های بلایتی و انطقی این رو دقت بکنید الان هم اگر جنگی اتفاق می‌افتاد مثلا فرض مثلا جنگ ایران و عراق این بود این سال معروض این جور بحث‌های ما که در کتابش این شرایطی روی بدن خود دینا تصویر نمی‌شه مثلا قانون دولت کلاً می‌گرفت در بودجه می‌بود در خزانه می بود خود اون ارتش یا سپاه تقسیم گیری میشه این جور حالا بر در مندها بیان تقسیم بکنن مثلا مطلب مطرح نبوده حالا این روی همون تصور دینی نه سعی کتاب‌هایی بوده که کتاب‌های فرضی بودن، چون نه همه‌ی برای تیج خزانه‌کتاب‌هایی می‌بینی که آدرسشون گربه‌سالمان است. حالا این رو اون تصور اول از بعضی این بوده که آیا این کتاب جزء قنایم هستن یا نه؟ نه چون جزء قنایم هست، می‌خوادم خواستن بکنم این بعضی پیش از اون می‌خوام بگم اون بوده حکومتی که آمد این تربیت کننده تیجیی ریه همون باشه در کتاب شهید توصی آمده. چه خصوصی هم حساب این مطلب را فرمودن بسید خب این الان ممکن است شما در حکومتی بگین اگر رفتن به کشوری این فرصم رفتن, رفتن روسیه ری گرفتن کتاب های کمونیستی و الهادی اکتاب های فاسد سکسی و جنسی بود اینها رو اصلا ممکن است بگید بسید قنیمت و اینا مطرح نیست اینها که موزه خاصی نگهداری بکنن موزه مخصوصی, مخصوصی بایگانی یا حاله، این اینطور نیست که از من جزء غنایم بشه. اونا بگن جزء غنایم نیست. مگر اون کتابهایی که درسته. چون دیدین نظر فقیه اسلامی اینطور بود که غنایم رو بعد از یک شرایط خاص خودش مثلا که مثلا فرض اون که حق امام خارج می‌کردن، خمس خارج میکردن صلب رو من قتل قتیلن فلهو صلبو. صلبش رو خارج می‌کردن، جول رو خاطر یعنی راهی داره بدون حلال بشن. این خاصی داره. ملاحظه ها داره ملاحظه ها بعد از اینکه اینا خارج میکردن و خود موجودی رو اون وقت از اول تخصیل منده میکردن مثلا غیر منقول خارج مثلا زمین و باغ و بستان و رودخونه و نهر و چاه و اینجور چیزایی که غیرمنگول اینا خارج و منقولها ها رو با یه ترتیب خاصی بین نیروهای رزمنده و جنگنده تقسیم میکردن این بحث این بود که کتاب کتاب تا وجوده چیز ملمولات دیگه خب کتاب مثل زمین که نیست اینو آمدن این پیشنهاد زایی که کتاب رو اول اون حاکم نگاه بکنن کتاب کتاب زلال اصلا تفسیری نکنه این منظور اصلا تفکر چی بوده چون ابوال اوایل ابوالحسن من حالا گفتم برای شما توضیح اون فضا رو نداری این توضیح فضا اینه که آیا این کتاب مثل یک قسمتی از باید معدوم بشه اون کتاب زلال معدوم بشه حالا درجات معدومی یا با قول امروزی ها گم خمیر بشه یا مثلا با آب بشوریم کاغذش نگه داریم اونیکه قابلیت داره جلدش اگر خوبه نگه بداریم یعنی چی نگهه داریم اون جلدها اگر خوبه تقسیم بکنیم بین جهانگداها بین عزمنداها این کتابا این سالم هم جزء حتمی تقسیم بشه بین نیواه عزمنده ادا خوبه مثلا چه هم همین راه نرده اما مونکرد در زمان ما مثلا منبال مثال بگیم نه اصلا کتاب کلن داره توی بحچه فرنگی مثلا بحچه فرنگی مثل زمین چطور زمین تقصیم نمیشه لذا ارز کردیم مرحوم شیخ تفریع فرمودن و از اهل سنت گرستن و تفریع ما الان باز دستمون بازتره و لذا ارز بعد و از, از تفریعات شیخو میشه قبول نکرد مشکل داره بذ مه شما بگی الان فرض اون شخصی که حالا در نهج این جن رو اداره میکنه و تشخیص میده اون تشخیص میده که اصلا کتاب کلا چه ظلال و چه غیره اش با تو بخش فرنگی تخصیرا نمیشه فرقی نمیکنه شستان مسترف پیش نظر باشه اینکه به بخش خالص خودمش اصلا جز قناعم مطرح نیست روشی که ابراز شیخ اومدن آوند بعدی هم توضیح نذن این توضیح رو من خدمتتون عرض بکنم هست بنابراین لیکن شیخ با همون مبانی اهل سنت رو برده یعنی خیال کرده ما مبنای خاصی نداریم نه خب ممکن از ما مبنای خاص رو شد بگیان ازن بخش فرهنگی رو مشمول غنیمت ندونیم من چون توضیح دادم اینطور نبوده که کل اموالی که از ما شکل بگیرن غنیمت بشه میشه ازن یه محاسبه یه میکردن الان اشاره کردم بخوام توزیعشو کامل طول چه بعد از اون چیزایی که از غنایم مثلا جدا بکنن مثلا یه گوهره باهایی بود یک عبد فوقلاذه بود که میز اصلو اونها رو تقسیم نمی‌کردن تو غنایم حساب نمیکرد زمین و معادن و اینا رو حساب نمی‌کردن باه و اینجور چیزا رو حساب نمی‌کردن یه شرعی داره یه اذه چیزا از غنیمت خارج میشه خاصا هم خارج می‌کردن اونم تقسیم نمی‌کردن بعد از این ها رو خارج میکردن اون وقت اون نتیجه حاصل رو میانا تخصیل میکردن در عدد نفوس رو از مندبان. که از کردیم این یک سنت قبل از اسلام هم بوده ها این اشتباه نشه خیال نکنیم الان میشه محصول تا اون جنگاه هستی که تو طبیعت جنگ و در اون شعری که اون که خوندم اون مقداری که قبل از تخصیل سهم حاکمه یه جا آمده تو این شعر شاعر لکن مربا و منها بلکه صفا اینا سهمها که هم یکی مرباه. مربا مربا بیست درصده بیست درصده این در اسلام فضی شد به بیست درصد خم شد. دو جای مربا که بیست درصد بود سهمش کم شد. اول 25 پنج یک چهارم بود بعد یک چهارم. لکل مربا و منها بلکه صفا یا مثلا یک کنیز فعال دید بود، آس فعالی که قابل در تقصیر من یعنی خراب میشد در تقصیر. و حکمی که حکم میینه یعنی که مثلا خود حاکم میگه این مال من باشه این فرش مال من اینه حکمو که میگه و حکمی که نشید و نشیفه در اینجا مراد گم شده است چون گویا وقت که قانون رو میوردن مثلا از اون صحنه جنگ از اون شریعه تا مرکز تو اون مثلا شطوری 5 شطوری 4 شطوری شطور، شطور گم می‌شد بعد پیدا می‌شد بعد تقسیم پیدا می‌شد مثلا حالا که گم شد بعد تقسیم پیدا شد اینا تقسیم نکنید اگه شما ببینید 20 هزار رجمنیشو من تقسیم می‌کنم چیکارش می‌کنه با چی کار می‌دنم می‌شه نزد باکه با حکم که نشی فقط این مال حاکم بود مثلا تقسیم مالی می‌گفتم 5 تا پتشو زیاد می که نیم جوز رو داره پرداخت این یکی هم مال حاکم بود. کل یه بود این بحث رو نه نه سهم حاکم قرار رو میان سهم و اگر صحیح نقل لا کتاب ضرر بود اونا خودو ضرر خارجه اون کتابه زلال خارج اون کتوبی که درسته یا کتاب ضرر بشوری که ورق بدین دفتر احمدی دار یا جلد نشه کتاب رو بسوزونین جلدش نگارین گفتن از چرم کی ماجره چیه جلد خوبیه اینا نگارید این روشن شد عبارت مقصود عبارت مقصود یعنی نوع فقه حکومتی به خلاف عبارت مرحوم شیخ مووی اون نقطه فرقیه چون مرموشه اونگی لایزو حفظ رو کتوم و زلال من هم شما خود عجیل کنید برای نوشن صحافی کردن حفظ کردن بار کردن از این بار کردن منظام مثلا وانت دارید کتاب های زلال رو جا به جا میکنید به این یه فقیه پردیده از دست اون بزید که مرموشه چون شیخ رضوان الله تعالی علیه از خطاست معلوم این است چند جور فرق داره هم فرق محسور داره که نهایه باشه هم فرق تصفیعی داره که مبسوط باشه هم فرق خلاف داره عرب ها هستن که الان عرب‌ها از این فن رو مقارن که صحیح مقارنه تلفظا مقارنه یعنی سعیش مقارنه فرقه مقارن داره که از خلاف ایشان باشه انواع فرق رو مرحوم شیخ نوشتن قدس الله نعس و این خبرویت یک انسان رو نشون میده در اونجایی که فرق تصفیعی یک جور خطا آورده اونجایی که فخره مسئولی جوری آورده این کلی کبرویته اگر راست باشه که بزرگان ما مثل که کتاب های مختلف داره اگر خطاهاش مختلفه زوایاش مختلفه نه این که خطاهاش مختلفه یه تندیس این تغییرات میگه چون گوی میگن مثلا خطا‌های علامه در اینا تو قواعدی این گفته تو مونتای این گفته در توی فلسفه نهایی چیزی گفته نه زوایات. توی قواعد از زاوی ای صحبت کرده تو منطقه از زاوی پتواهی بین از صحبت کرده توی کتابیه از زاویی فصل روایات مجموعه روایات و صحبت اگر این مطلب راست باشه من از کردم این مطلب را از عبارت پسر علامه در شرق مطلب پدرش ناشته اگر آن داشته باشن ای ظاهر ایشان تاک شده اشکالات قواعده در مقدمه داره چون خود مقدمه قواعد رو خود پسر شرح کرده جداگان دو تا کتاب این کتاب شامل چهار یه یک کتاب شرح مقدمه قواعد یک شرح خود قواعد شرح اشکالات اون در کل کتاب در اون مقدمه میشه که اختلاف کتب پدر من به سبب مبانی و زوایای مختلف اگر مراجعه حالا منم اگر فشار خیلی سریع میز زگه آدم مراجعه کنم معلومه که حالا اولدن اي وارد ندارم. اگر مراد پسر علامه این باشه که من الان توضیحی دادم که این فتاوا از زبایای مختلف اگر این باشه دلالت بر عظمت علمی بسیار بالایی نمو کنه خیلی واقعا انصافه باید قبول بکنیم که خیلی که انسان مثلا یه دور فقر رو قواعد می نیسته، یه دور فقر رو, رو روایاتی نویسه در بخواد از اول چهاره تا آخره بیاد همه اینها رو در نظر خیلی واقعاً امروزه میگن دازم معارف موسوعه با قلعه. یک دازم معارف بزرگ فکریه، میخواده یک فوق العاده میخواده یعنی کار در نیل هم بله ما دید که این طور احاته داشته باشه یک دور و از اول تا آخر از نوایه های مختلف بتونه بنویسه این انصافا؟ فکر نمیکنم میکنم چاید نباشه این فکر نمیکنم اینجوری که من تصور کردم این واقعیت داشته باشه احتمالا که میانم کنصر خیال ما دارشت خالف کرد تا این قدر دقیقت <BACK> <away> دقیق کار شده باشه به هر حال بهتر این بود ارز شد که از زمان شیخ این مسئله با عنوان فردی مطرح شد لیکن با خاطر ارزمت شیخ هر دو عبارت شیخ مطرح شد بعدها هم از کردم خیلی از این مطالب رو از از حضورتان بعدی مثل مرغمه علامه درش شده. این مسئله خصوص که چند نفر بر از علامم ادعای اجماع کردن و ارز شد که مخالف که به هم مخالفت کرده مرمول صاحب هداره عبدالس الله و سهده شده هم به تندی مخالف قبولم نکردم حکم ها من نداره این که این رو باید نداره زدگی نداره این چه این حکم رو قبول کرد نگهداری کتب زلال ما زیم مسئله نگیم حرام نداره چه از برای خورمتش این شد. عبایت استاد رو فقط یه توضیحی بدیم بعدا برید سر پهیر نهایی مسئله کلی در خلال بحثها تا یک حدی روشن شد مرحوم استاد کلمات شیخ رو منظم کردن که از خصاص مرحوم استاد این بخیلی منظم میکنم در این کتابشون صفحه یه بنظر من 257 در وجوهشون رو خوندیم اون چی که مونده بلکه خامسه حسن اتا عبدالملک الملک ابن احریان اللسی تقضیم از این مخصف تنجیم در اونجا رو که من به این علم نگاه میکنم عبدالملک الملک ابن احریان بعد ازد کنم از حقزی قلت و نم قال احرق کتبت از کردیم این ازدار فقهی این بحث و ما کراره عرض کردیم یه نوع بحثی که گایی بهش تلازمات میگن ملازمات میگن گایی بحث تصانخ میگن میگم هر جا اگر لری آمد برای این که معدوم بکن یک شیئی رو این اصلا خودش معناش اینه که تمام اون احکام رو داره این لایجوزو حفظ و لایجوزو بی او لایجوزو حفظ و لایجوزو شما او لایجوزو ده کل کل اعدام یک شیئی بلا تأبیر قانونیش این که میگه معدومش بکن خودش اعدام این مفهومش اینه که تمام انهای تصالفات هرام به خلاف این که اگر نه روی اعدام نرم مثلا راچه به کاسه تلاه اما میتوند توش آب نخون میگه نگفت آب نخور در همه همه فعلا حرامه خرید و فروش و نگهداری و هده هبی اینان در میمیم آب نخون در آب نخون اما اگر فرموند کاسه طلا تلاه ما معدومش کن بشکونیش تا بیشه خالص اون کاسه کاسهی برش نمونه اصن بگید بشکنش تا بشه طلاق کنا ماده ماده فقط همین اگر امام اینجور فرمود معنیش اینه که به یه اشباطل شداش باطل نه به باطل هر چیزی باطل, باطل. نگهداشتن تو کونه باطل حرام باطل نه حرام لایجوز این یک اصطلاحی میگه حالا یا باید بگیم یک فهم عرفی عامه یا لاگال فهم عرفی خاصه به نحو ملازمات و تسانوخ قانونی من از, از تعریف به تسانوخات تسانشون ملازم تلازم رو در اعتبارت قانون جزده این روست فرخیت قانونی یعنی وقتی گفت احرق کتبت تمام اینا ها ازش در میده یکی هم نگهد داری یکی هم امسال یکی هم نمشتنش یکی هم خریدنش دقیقی؟ چون یک احرق کتبت اعدام اگر دلیل آمد برای اعدام یک چیزی یا بگیم ارفعام اینو میفهمه کنایه ارگیز رو زیدون کسی رمان. یا بگیم عام هر ای رو نفهمه عرف قانونی این رو میفهمه ارفع قانونی این رو مناسب میدونه با تمام انهای تصرف به خلاف این که نه از یک تصرف باشه لا تشرب باشه لا تحکل باشه از نه لا تشرب و لا تأکل. تمام اون هر با در نمیان محمر اون استاد جواب دادن و فیه مختصر تفصیل فیه ها الگاه فیل شرکه جواز الهفظ مع عدم یعنی هر کسی این... که این شرط حکم نکنه به موافقه کتب نگه نذاره البته ایشون مجمل نداشتن مرحوم شیخ هم این بحثو داشت مرحوم شیخ انصاری هم, هم داشت که اگر شما میخواید از مجموعه ادله بگید حفظ کتب دو عنوان حرام از این ادله در میاد تو در اثر این اهمیت اثر نگهداری کتب تو خونم گذاشتید هیچ کس هم برای تاثیر پیدا نمیکنه هیچ کس هم مصالحهش نمیکنه توی گوشه گنجهی بودشین در چند کردم کردیم محکم کسی هم بازه مرموم شیخ هم فرمود اگر بخویم دنبال این عنوان باشیم این عنوان از این عدله در نمیان این عنوان که نگهداری کتب زرار فی نفس حرام باشه این از مجموعه داره داره. اما اگر اجمالا شده این در حقیقت استاد هم بخواییم اجمالا موجب اگر موجب زرار موجود موجود نه حرام موجود اما اگر این کتاب و تصادفن این کلی شدیده یعنی در اینجا اگر این کتاب زلال تو خونه ایشان منشأ گمرانیس بالا از بینش هم ببره احرام باز بکنه اصلا اترزی احرام هم داره نه فقط حضر اصلا اعدامش واجبه نه این که فقط حضر حرامه ظاهره آیینه ظاهره راضی نه اه. البته استاد بحث نفرمدن که حدیث قابل اعتماد هست یا نه اشون به حسنه کردن جواب ما از حدیث سابقا گذشت از کردیم استاد در وقتی که این بحثال مطرح کردن مبانی رجالی نداشتن، ظاهرا کتب اصحاب تحبیل به حسنه شده اشونم تحبیل به حسنه کردن فکر نمیکنم نظر خاصی داشتن. او سوان ارز کردن این عواخه که تقریبا توی نوشته ها من خیل اینا همی که چاپ کردن تقریبا این اواخر مرحوم استاد حتا به سریع شد زیاد چیز نمی کرد بیشتر تعریفش معتبره صدا معتبره کلا چون خب ایشون هم حرف میشن بود که ما یه ادله ای داریم برای حجیت خبر ها. هر خبری که مشمول ادله حجیت بشه معتبره بلند فرضالا دیگه این تقسیم بندی حسن و صحیح و ضعیف و موثق و خبیر و رو بعدش به انداز اضافه کردن این تقسیم بندی فایده نداره چه فایده داره چه اثر داره دیگه این اواخر غالبا چیزات بحثشون بودند معتبر لاره بواسطه فلان والا که این روایت این از کفا فلان به صحیحه صحیح و این روایت مثلا فلان به حسنه لکه به نظر ایشان ایشان تفسیر کن که معتبره از معتبره لذا این تعابیر ایشان مال اون دوران قبل ایشانه دوران بعد ایشان این تعابیر رو نمی‌کردن تعبیر به حسنه نمی‌کردن یک و نکته ایقوفی هم نداره سر هم نداره نکته انه که در این روایت محمد علی ماجیر هست استاد صدوق صدوق چون ان روایت ارز کردم از منفردات صدوبه خودشم ر ندد این روایت در کتب اربعه فقط در فقیه آمده هیچ دیه نیمده توی روایات قدما هم این مضمون نیامده یهرق کتب النجوم نیامده ما یه شواهدی رو نقل کردیم که قابل قبول نیست نمیشه روات قبول بکنه. که <risque> احراب کتب نجوم بله این عبارت بعدها در مست وسائل آمده که عمرال امام به احراب کتب نجوم تو وسائل آمده اونم چون جب پقیه هستی خب حالی تو پقیه بود وسائل عمل میشون کنیم یه واضح مفتخاتی اون <kratuliffe> <mikilise> <hazen> و این روایت منتدلات صدوقه ترسط و استادش محمد ابن حلی ماجیده به میکنه این آقا رو این رجالیایی که اصلا آمدن قبل از به استاد ها شد بعضی باشین که این تقسیم قبول دارن میگن این محمد ابن علی حسن آن یعنی امامی و ممدوق مردی هم از کردن نداره فقط استاد صدوق صدوق از او احبه میکنه مردی دیگری من از شخص محمد ابن علی ماجیده بید. به هر حال گفتن امامی و استاد مثل صدوق حالا لاقل حسن و پس این تعبیر استاد فی ما بعد با مبانی خود و استاد نمیستازه سازه اولا ایشون تعبیر به حسن نمی کردن و واژه‌ام بود به نظرشون یا واژه‌ای غیر معتبر این تقسیم بندی ای که مثلا موثث حسن است و درجات داره این الان ان شاء الله اگه خداوند توفیق من راجع به این تقسیم یک صحبت کلی یه وقتی از خانم که, که ما در وزارت حدیث این شاء الله ارزم و برای ایشارش رو ارزم می‌کنم ما بودنی اینها تو این جراتی نه. چوش که لا اینجا نیست. و ثانیاً ارشدون استاد دین اواخر چراران یک بار محمد مهدی ماجلیوی رو قبول نمی‌کردن. توصیه‌نامه درست خاص نمی‌شد، این بالاتر نمی‌ت، قبول خاص. شو ایشون میان درست استاد صدوق، صدوق هم مثلا در رفی الله انمشه، اما این کافی نیست برای رسالت. استادی صدوق اصولاً شیوخ شیخ اجازه هم محتاج به توصیه‌مندن. ارشدان ما در مباحث رجالی ما از زمان حدیثی ما، از زمان شاید سانی، ایده از موانع اهل سنت وارد شده. دیگه چه این تا اونجایی که من بردم، آقای مراجعه که چیزی کردم بسیار. تا اونجایی که من بردم، اولین کسی که گفته شیوخ اجازه احتیاج به توصیه مانند شاید سانی، ما به که یا به عبارت دیگر، شیوخ ها اجازه مستقل نه توصیه احتیاج به توصیه. خب اینو ازده بعد ازشون گرفتن ها جنوری دیگران خیلی هستند جالی ها خیلی ها گرفتن که شیوخ اجازه ازده به توصیق من و توصیق میکردش استاد استاد بولانی شاگردش بولانی از این را توضیح مرحوم استاد هم, هم قبول نکردن توی جنده یک معجم توی مقدماتی که نوشتن یه بحثی دارن شیوخ اجازه دارن توصیقات عامه و قبول نفهم فردن شیوخ ا ما از کردیم که اگر ایشون بحث صغری می‌فرمایند بد نبود اما بحث کبریش انصافا چون شیوخ اجازه بزرگان شیوخ اجازه مثل مراجع زمان ما بودن بلکه یک لحاظی از نظر علمی خیلی بالا بودن فقط اجازه نبود یک واقعا این مقام <تصفح> علمی بزرگی بالا باشه یعنی به عبارت دیگر حالا من ان شا الله شاید تو بحث‌های دیگه یه از بکنم از, از این روات ما که عنوان شیوخ اجازه مسئله اینا شعر فقط نقل نسخه است بله خب مردمان بزرگواری بودن نسخه رو صحیح داشتن نسخه صحیح رو بردن و نسخه رو صحیح نرسانده دیر شعر اینها تنقید نیست خوب دقت بکنید تصحیح نیست مقابله نیست انتقاد اینی که با دال و انتقا اینی که با همزه انتقاد یعنی نقادی کردن انتقا یعنی گذیدش گزینش کردن شعن اینها انتقاد و انتقا نبوده شعن اینها این بوده که فوقش یک نصره صحیحی رو ارائه بدن و خودشون هم دقیق بودن نصره دو خلطورت نکردن این یه نحن شیخ اجازه داریم مثل علیه ابراهیم حاشمه ای ابراهیم, ای ابراهیم این احقیق اینجوره این که آن بعضی خواهی کنیشون فقیر بوده کسی من ندهبشون بودن ف اینا فرض کنید اقایزمه هایشون درها نسخه از کوفه به قوم آورده نسخه که ایچون آورده شعنش اینه هم نسخه درستی رو آورده هم خودش درست نهاره کرده هر دو خب یکی سخن خوب میگوید یکی سخن خوب دویا. ایشون سعی کرده هم درست نسخه درستی بیاره و هم نسخه رو درست نهاره بکنه هر دو رو انجام ده اما اصلا دیگه آه روایت تو کتاب سکونی هست معارضش تو فلان کتاب من این را این کار نمی کرد. این اسمش انتقا بود ما یه از مشغل حدیث ما کارشون فقط نقله اینا انتقاد و انتقا و گزینش و تصیب و پالایش و تندیح نمی کردن یه ازشون نه واقعا خب قصداد دیگه فقیه هم بزرگوار اینا کارشون انتقاد و انتقا بود گزینش بود تحصیح بود مثل احمد محمد بیسای اشعری شون خودش هم راوی بزرگیه نه این که در اون جرد مشکل داره خیلی هم به اون روایت وارده خیلی هم مراعات زوابط میاره روایت رو میکرده به دقت هم مراعات میکرده در این حال خودش هم فقیهه در این حال خودش ساب نظره مثل خود کلینی خب کلینی پس ممکنه کتاب سکونی نزدیک دو 2000 هزار و خورده ی حدیث کتاب ستون دسته اون کتاب ست تاش انتقاع کرده ست تاشه کرد، کرده بقیه نامنجد. همون کتاب در اختیار صدوق هم بوده صدوق ممکنه 150 صد تا هاتون انتقال کرده ممکنه در 56 تا با کلین مشترک باشه بقیه با همون خالف این سر اینه که یک حدیث از یک در کتاب فضل مثل کلیگی میاد در کتاب صدوق نمیاد وضع به بشه که دیگه در, در دا و در کلی نمیاد چون اینا شعرشون مجرد نقل نبوده تو دقت می پس شیوخ حدیث و شیوخ اجازه اینا مختلف بودن درجات مختلف داشتند بعضی هاشون دقیق بودن بعضیشون دقیق نبودن بعضیشون مثلا همین کتاب ها رو بعضی جزء ضعیف هم بودن اون اشکال به سهن این بود دیگه بحث سر, سر انتقاد سر نبود محروس هر که اصلا دقیق نیست این قلب غلو نقل کرده نسخه خراب کرده اصلا اشخال به سهل زیاد این در واقع شهد علیه حبو جعفر به کز والغلوم و اخرج و منقوم این کز در اینجا مولاد دروغ نیست مولاد قلب غلو کردن نسخه هست. خراب کرده مطلب رو چون مبانی حدیثی ضعیف بوده پس که مثلا کتاب وشا رو در کوفه آمده قوم کتاب وشا رو خود مرحوم احمد هاشمی وقت کوفه خودش با رو دیده احمد هاشمی بگم بابا این جناب سارت میگه کتاب ورشاو این از ورشاو نشیده من در کوفه اومدم این از بازار کتاب که خرید اردنارد وجانه اعتقادش این بوده که من اردنارد چاییده خب چرا قاضی حال مشکل نداره کله دیگه اعتقادش ما اینقدر در محدثین اهل سنت که این اعتقاد درست میونسه این نتیجه اعتقاد نسخه ایشان مشوذه کذب مراد کیه؟ در کذب مراد یا راستن دروغ بگه. کذب خبری مراد نشه، به مخبری بگه، والا ما. نه اینجوری، عمدن دروغ بگه. نسخه ای که ایشون نقل از صحن یا از ورشاق، از ورشاق یا از, از دیگران یا از شعر محبوب، چون کال صحن نقل نسخه کوفی خاصیه، این نسخه ای که نقل کرده غلط قلوب داره و سبب قرع قلوب شده کیشون ضعف مبانی حدیثی داره نه کذاب به اصطلاح باشه این شما توضیح وقتی توضیحش پس بنا بر یه مقداری روشن شد مرحوم محمد ابن علی ماجیه اصلاد صدوق هست اینجای بحث نیست اما جزو مشایخ بزرگ نیست مثلا ما آشنایی نداریم احتمال داره یا مشایخ عادی باشه احتمال داره اگر هم برفرزم جز مثلا مشایخ عادی در حدی که فقط کتابها رو نقل بکنه در حد انتقاد و انتقاد و جزو بزرگان فن و بزرگان حدیث به حساب نمیاد لذا انصافا این حسن بودنش شما ما که حسن بودن نمیفهمیم خود حسن بودنش چند رو چند نیست من دو لاغر نیستم فقط شیخ صدرا میگه یعنی من واسه مرد نمیشه پس این عبارت مرموم و استاد ایشون خودشون برگشتن و این عبارت ایشان درست نیست به تعبیر خود ایشان یه غیر معتبره است و اشکالاتی دیگری که ما مطرح کردیم اشکالات فهرستی هم رون روایت بود چون این روایت از کتاب یونس به نسخه محمد برقیه که از این واقعا مشکل داره نسخه محمد برگ از کتاب مشکل داره این اشکال دیگر آن مفرح نکردن ما خود رو مطرح کردیم اون جهاز توضیحاتش در ثابت بودن این راجع اما اینکه از این روایت در میاد که اجمالا کتب زلال رو نمیشه نگهداری کرد این روشون قبول دارن لذاب نمیدم حالا استاد ترجمه رو نه شیخ انساری هم با یک ذرافت خیلی با من شیخ بازیختا یک قالب وقتا یک های بسیار لطیفی داره و شیخ هم میفهمه از این کتاب از این وادر نمیاد از این وادر از این من منعناس من یک سی لحظه لحظه دیگه هم این توش این معناه چیست؟ یعنی هستان که توی گنجش نکل درشان پس اون عنوان حفظ کتب زلاله این عدلهی که نعقل شده تو چیز ریگم داره حفظ تنها نیست. لذا این سر نکشه گفت تمسا کرد به اطلاق معقد اجماع چونی چیز سر مفتی فندی شوشن شد چون این عدلی که اقامه شده گیر داره به اون مطلب توش توش در نمیاد حجزه کتب زلال فی نفس حرام این توش در نمیاد وزارت میگن اگر حکم کرد حرام حال حال طبق همین همین های باطل حکم می‌کنی ترتیب احصار دیدی گفتو نه نم، از نما نه کتاب بس پس توش در نمیاد داشتن کتاب باطل حرامه اگر سبب اون باطل عمل کرد حرامه از دنبال احمد کتبه روشن شد این روشن شد چرا شیخ در مقاصر فرمان اطلاق و معقد اجما چون شیخ دنبال عنوان حفظ کتب زلاله این عنوان این عنوان از روایات در نمیاد. اونی که از در نمیان تقدیب آثار ازلال اینجور چیزا اما از روایات در جده حفظ کتب زلاله نفسه نه شیخ هم تحلیل نکردی از کجا در فتابه ما آمده دعوای اجماع هم که مسئله وجود داشته ایشون میگه به اطلاق معقد اجماع تمسخ بکنیم راسته اگر اطلاق داشته باشه معقد اجماع عنوان حلوزه کدو بزنه خوب <تصفيق> خب میدونیم این عبارت کاملا کلارا شنیدیم که اجماع دلیل این لبیس به قضا امتحفت میشه افضل میشه قابل برای به اطلاقش نیست نمیشه به اطلاقش تمسخ کرد الان یا حاله پس استاد هم قبول دارن ا بعد هر دلیل 4 میشون البته رابع جمله از فقرات روایت تعقل عقول این خود استاد آوردن بهتر از بقیه آوردن اون فقرات روایت تعقل عقول رو نسبتا از بقیه بهتر آوردن و این صافن این مطلب که به اصطلاح در فقرات توحفل اغول ادهی از فقرات توحفل اغول بله این مطلب در میاد بین انصافش جای بست نیست این نمیشه این کار که انصافم سریعه سریع شاد نماشه اما با اون تقریبی که من در ارز کردم میشین و حالا من قبل از اینکه وارد فقرات توحفل اغول بشم من ارز کردم سابقه اه... یک مقدار از عبارت توحفل اقود بله در کتاب بازی نعمان آمده دائمون اسلام یه مقدار که بیشتریش کمی هم بیشتر تو شکر رضا آمده از کتاب توحفل اقود چون مخلق لطیفیه به لحاظ خود کتاب چون ریشه که نمیدونیم این جزه میراس های ما در شامه که در حدود سال های مثلا سی سده سی سی سده چهلی سی بوده تا هم نداریم ما بین کلینی و مثلا فرصان شیخ صندوق یه چی دیگه توی راجع به کتاب خبر اونی که به دست ما زمان الان مجلسی دست ما رزید که خب طبیعتاً ویجنب خبر نداریم اما نمیدیم حالا باقیشم کجا بردیم <تصفيق> یه نقدر اگه از روایت تحفل توش هست این, این بخشش نیست او این اصلا من روایت تحفل اقوی یه روایت بی نظیر در نوع خودش در بین روایات اصحاب ما بی نذیره. چون چهار مورد موارد درامت رو نوشته 25 مورد هم هزینه نوشته ما اصلا کلن روایت اینجور ندارم کلن نمازاری نهل نه سنن نزاه هم مثلا شده که از وجودی که در روایت هست، این به وجود کوها شروع به روایت. میگن چه چیز دیگ ما نک اقتصادیه. الان در دنیای اقتصاد هم حسابات وزین هست. اصلا میان منابع اقتصادی رو تقسیم می‌کنن دیگه. میگن یا خدمات یا کارگری یا کارمندی. این شو تقسیم کردن این روایتن تنها روایتی که ما داریم. سنیا ندارن، ما هم نگفتین ندارن. مثل یک بحث اقتصادی که امروز در دنیای روزمره هسته. دسته بندی کرده چهار درآمد در آمده 25 مورد هزینه از تو زندگی لیکن این نواد به نظر ما احس داشته اما فعلا از دست ما رفته چیزی به دست ما نمید موشن شد اشکال که نداره هیچ یک شواهدی هم داره آقای او نداره شواهد مرموسه از می شواهد صرف ورش شواهانه به نظر من هم باسه یعزیه به نظر من میاد که این شواهد سه بیشتر معیدشه تا دیر اینها حالا این راجعه به روایت اون در من یک نکته را از کردم یه تیکه های روایت تو آمده این که مربوط به ما نه نفیز این تیکه هاش نه یه تیکه های روایت تو فخور رزا آمده این مثل چونه توضیح نهده آیون مثال خودی دیگر این تیکهاش بعد ها تو کتاب از معلوم نیست که از کتاب تلاف... تحوله دو... یعنی شهاد غفی و خلاف نشون یه تیکه از این بباید هم که کمتر ایست در اکزام دانمال اسلام آمده اونی هم که تو دانمال اسلام این نیست یعنی این یه که از در تحوله او روشن شد نه توی فخور رضا موجوده نه توی دانمال اسلام یعنی ما به ذهنمون میاد که شاید میمواد کدیجهی هرچی به اصطلاح چه نیا سانسوریکی سانسور هر شو <تصفيق> اخرش هم برداشت میشه اصحاب پرکتی اشون شام، خیر از روای تو عقل رو روایت روایت و بنواید اون ندونی کلا یعنی این ترتیب رو مثلا یه تیکش توی روایت دیگه از امام باقر باشه یه تیکه جایی از دیگه از امام رضا باشه اونم ندارن کلا نداریم. دیدید شما پس این روایت اون قسمتی که به درد ما نهنفی میخوره اون قسمتش الان فقط تو تحفل عبوده تو فلم رضا هم نیست تو دعایمون اسلام هم نیست اون مثلا از کردن برای این کتاب در آمد رو چهار تا گرفته یکی بخش ولایت یعنی به اصطبال ماهان امروز بخش اداره یا دولت یا سیستم رژیم حاکم یکی ولایات رو گرفته یکی تجارات رو گرفته یکی هم به اصطلاح سناعات رو گرفته یکی هم اجارات سناعات همونی سناه با هم سناعت یا تولیدی میگیم؟ از کل تفسیر اومنتی این سناعاتی که ایشیم و توش به زبانان اصطلاح ما الان امروز رو صنعت نمیدونیم از اونجایی ما اصطلاحیه مثلا ادهی هم رو نقل سناعت میدونن الديها من نوع صناعتي اینه حالا بحث اینا حوالی اقتصاد باشه سرعت اصطلاح تو کلی طبیعی شینه هر نه و عملی که در ماده خام تصرف بشه قابلیت استفاده درآورده انسان اصطلاح صنعتی ماده خام اولیه در نظر بگیره در او تصرف بشه فرض این سنگ رو از کوه کندن تو صاف کرده و تو پوشیش می‌شینی این چوب درخت بوده به این صورت دیگه اصطلاح صنعتیه اصطلاحاً, اصطلاحاً اینه هر چیزی که در کار خام که اصطلاحاً کارگری هم بیم میگن بزرکارگر در کار در ماده خام تشرفی بکنه که اون ماده قابل انتفاع بشه این حق انتفاع یعنی این چیه بهش میگن چیز اصطلاح خاصی داره چیز انتفاقی من فرزه چیز خاص دارهش میشه؟ اصلا کتاب کارماس دارمان ایدوه باشن رسول مالی و سرمایه اول بحثش همینه اونها هنر مهمه اصلا کتاب کارماس به اصلا به اوز سجنده قطوره خیلی قطوره تمام روح بحثش همه اولشه ولی اسمش منفعت نقل نقل این میگه اون هنرش چیه ایشون میگه همین اصلا خواهش این نیست حالا شما یک انتباه ازشون داریم یک مبادله در مقابل در سر اینه این مبادله این پول که داده میشه چه مقدارش این چی تقسیم بشه این پول در اقتصاد سرمایه داری یا به قول خودشون به اصطلاح اصطلاق مزید دارم آزاز استساده آزاد. میگن این پول یعنی مبادلی ارزش مبادلی ارزش انتفاعی این ارزش مبادلی به سه قسمی میشه یکی مادرش که کوب شرم میکنه یکی پولی که سرمایه دار میگذاره یکی هم کاری که کارگرم میکنه یعنی ارزش مبادلی رو تابعه سه عامل میدونن سرمایه طبیعت طبیعت اناسر مهم میگذاره اگه زمین یکی معادلی هاست و کار هم کار ارزش مبادری حرف مارس که تمام روح تفکرات مارسه ارزش مبادری تابع ارزش انتفاعیه فقط تابع کاره اون که میگه همه رو باید کارگرداد این سه تمام اختلافه روشه میگه این کارگر که این شوب رو قابل انتفاع کرد شما خود ماده یا سرمایه رو نباید اون اونسول بزنید این کار که آمرت ارزشش رو مبادله دیوید میکنه، این یک ارزش انتفاعی داره. ارزش انتفاعی این چه در درکیم؟ درکیم که چرا کسی میگویند که اون ماده خام این سنگری که هایی شما استفاده میکنید، این ماده خام در کمر بخواد یک کوبش تو مدرن سنگ یکی که سنگ وحشی خطرناکی می که از میتونه نگاش بیشتره. این کارگر نردهای که این کارو میکنه بیشتر از نردهای اون هدفیه که ارزش مبادله روستن فقط تابع کاره اون در کدار معروف حاضر اسمی که برسه به قول خودشون مرگ متفکر زنیه سرمایه داریست کابیچانیست او سروت ملن اون میگه تابع سه عنصره، کار سرمایه و طبیعت اون میگه نفت تابعی انصاره اون کار اون خلاصی روح تفکرات مارسیستم خیلی هم چونه در این روایت مبارکه صنعت و عبرده از خبرا من در سابقا توضیح سنعتی که در این روایت آمده یه نقدار با صنعت اصطلاحی ما تحرمه میکنه اجارات رو هم عبرده اجارات شمه ما کارمندی و مثلا کارگری و خدماته تمام کارگری مثلا من شون سابقا توضیح عرض کردم دیگه نمیخواد تکرار رو و اون مدلی که مربوط به ما نحن میشه نظام ما گفتیم که مردم شیخ موفی احتمال قوی از این روایت گرفته پیشون بوده اما الان دست ما نرسیده در باب بیع و شراع داره اون رو یا به عبارت دیگر تجارات گفتیم چهار تاست. امارات، اجارات، صناعات، تجارات شد در آمده چهارت ها این بحث هفته کتب زلال به مناسب هفته کتب زلال توی چه کتب زلال؟ این توی بحث تجارات رو برده. تو اون ا خب جایگاهش هم این شرح تاریخی حدیث هم خدمت هم و اما وجوه الحرام من البعه و شرام فکلو عمره یکون و فیه الفسار مماغوه منهی و مزجعت عکلهی و شربهی او کذبهی او نکاههی او ملکهی او امساکی ملکهی اختلاف هم، داره او حبتی او آریه کهی او شیعن یکون فیه وجه من وجوه الفسار نذیر بیعه به ربا و بیت نذیر بیعه به ربا دم لحم خیزیر لغوب سبا من صنوف سبا و, و, و شيء من وجوه نجست ببینید پهازا کلو حرام و محرم لعن ذلك ان انعکله و وشربه و وملكه و و انساکی و تقلبی فجمیع و تقلبی فی فیراله فی که حرامون رو بیشترم از ارسا من دهی توضیح قانونی دادم اشون باز دگه اگر آمد یک چیزی گفت از هبش حرامه اگر زیر آمد گفت این حرامه نگرداشن همه ایت از حرامه من اول باید اشاره کنه. فجمی و فی ذال حرام او، کدال که کل ما بی امله و و کل من هیل آن، از ماری بیه. میل ما لغیر الله. او یک و بهی و شیر. فی جمیع وجود معاصی. او با او با برد. به اختلاف زدند. یوحنو بهی الحات. فهوا حرام او، محرمون، دیوهو. شرع امساك ملکو حبتو آریتو و اریه و غنی و تعلق فيه ولذا به عبیده و مرمون شیخ مفید انصافا اون مطلب رفیع جا گیرسه او بابون و او حق و یک واضحه الكف متقربیه لغیر الله اینا نصبغ وارد شدن کدوم زلال دیگه ما لذا ایشون گفت نگه‌داری حرام استنصار حرام از سقافی حرام نوشتن هر فجنی و سقل و بفی حرامو انها افتر رو بازی که خواهد شد حرامه اینجور که ما معنا کردیم انصاف فردی و به نظر من خیلی بی واضحه که مسلم و همین ربایت دیره دقیقه کلام فردا و الله باید محمد و آله تاهد البته استاد اشکال فردن که زیب این مصرفش.